مرزهای دانش برنامه از همجمن استادان و پجوشگران ایدان شنواندگان عزیز سلام عرض میکنم کامران آبدینی هستم مصراتون بخیر مهماندار این ساعت برنامه, برنامه مرسوی دانش یا بهتر بگم مجریه این برنامه هستم الان چون مهمانی غیر از خودم نداریم اینجا این برنامه همونجور که میدونین هفته یک بار توسط همکاری انجامن استادان و پجوهشکران ایرانی و KIRN رادیو ایران به شما هدیه میشه و معمولا دران با متخصصین عادی علوم مختلف گفتگوی داریم یادآوری میکن که معمولا چون ترجیح میدیدیم که آگاهی ها رو کاملا و همه جانبه و از نظرات و مختلف توسط استادان و پژوهشگران ایرانی به اطلاتون برسونیم برنامهه ما بدون هیچ گونه تبعیضی برای سیاست مصحب، جنسیت، نژات و روش فکری ارائه میشه خواهش میکنم برای آگاهی بیشتر از خدمات این انجامن و یا اینکه دوست دارین باز شنووی برنامه های مرس دانش به سایت اینترنتی اپسی.org که از برای آsoسیشن P برای پروف S برایکlars آی برای ایرانی H برای heritage نقطه اوG صرف اول رگیزشن مراجعه کنید. کارگردان فنی برنامه ماام جنابقا آین آ اجیر هستن که از همکاریشون بسیار متشکرم. در ضمن اگر فرصتی بود که صد درصد فرصتی خواهد بود امروز چون که من هم مجری و هم کسی هستم که بیشتر مدت صحبت خواهم کرد در قسمت آخر برنامه اگر دوست دارین, دوست دارین صحبتی داشته باشین راجع به موضوعی که امروز بحث خواهم کرد میتونین با گرفتن شماره رادیو ایران که هست 323-512 -64 -3 -3 -2 7 64 7264 سوالات خودتون رو در مورد بحث امروز در میان بگذارید. خب خیلی ممنون و متشکرم که این ساعت رو در اختیار ما میذارین من صحبت امروز من راژبه چالش های مهندین برای سال 2020. حالا دلیلش که از من خواستن که امروز بیام راجع به این صحبت بکنم این بودش که هفته پیش برای تقریبا همین شش روزی من مهمان یک کنفرانسی بودم که در شهر دوهای قطر تشکیل شده بود و اسم این بود Engineer Le for Engineer education یا رهبران مهندسی برای تدریس و تلیم رشته مهندسی و در این برنامه تقریبا صد نفر از تمام دنیا دعوت شده بودند که دور هم جمع بشند و راجبب آمادگی برای سال آینده از لحظه مهندسی و تدریس مهندسی صحبتی داشته باشند و در اصل تیتر این برنامه همین چالش های مهندسان بود برای سال ۲ 2020. دکتر نیری دست عزیزم در برنامه شون همین تقریباً یه نیم ساعت پیش راجع به این صحبت میکردن که دنیا جهان یک حاکمی داره یک نازمی ممکنه داشته باشه و داره و من میخواستم بگم که درسته ما هیچ حاکم و نازمه هیچ چیزی نیستیم اما اکثر کشورها و سازمانهای پیش رفته بلاخره یک برنامه روزی میکنن برای آینده و به طرفی میرن که این برنامه بتونه به طور بهتری عمل بکنه مثلا از الان برنامه ریزی داره میشه برای اینه که چه، چگونه مشکلات و چالش هایی برای مهندسین سال 2020 خواهد بود که ما بتونیم در دانشگاه ها مهندسین دانشجویان مهندسینی که میانو برای اون آماده کنیم این چالش ها در سال دو در حدود هفتش سال پیش توسط نشنال اکادمی آف انژینیرز، آکادمی ملی مهندسان اه، که اه میشه گفتش که از لحاظ اهمیت، بزرگترین انجمن مهندسین و کسانی که عضوش میشن صد درصد باید دعوت بشن هرکی نمیتونه عضو این بشه و شانسی داریم که ما مثلا جناب دکتر ارشاقی که جزوه انجمن ما و پدران انجمن ما هستن عضو این انجمن میباشند اینا توسط گروه ها و نمیم کنفرانس هایی که داشتند و دارند با کسان مختلفی که مثلا رهبر سازمان های مختلف مهندسی هستند گفتگوی میکردن و میکنن و دنبال این چالش ها هستن و دنبال برنامه ریزی که چگونه مهندسین رو آماده بکنیم برای این مشکلات آینده پس همون جور که میبینین بالاخره یک نظمی باید باشه که بهتر بتونیم که مشکلات و چالش های آهنده رو در نظر بگیریم تا اینی که وایسیم بهش برخورد کنیم و بعدم بشینیم ببینیم که باید چیکار کرد نشنال اکدمی آف و در دو قسمت این کار رو پیاده میکنه اولا این که برای استفاده از مهندسی چه پیشبینی هایی میشه چه مشکلاتی چه چالشهایی از مهندسی استفاده خواهد کرد؟ و قسمت دوم اینی که چگونه مهندسی را آموخت که دانشجویان رشته های مختلف مهندسی آماده برای چالش های آینده باشند حالا من رشته های مختلفی که دارم صحبت میکنم تمام رشته های مهندسی رو دارم صحبت میکنم یک رشته نیست اگر خاطرتون باشه سه چهار هفته پیش در خدمتتون بودم راجبه رشته های مختلف صحبت میکردیم و همون جوری که خواهید دید من به زودی صحبت اینو خواهم کرد که شاید بهتر این باشه که یکی لیسانس در مهندسی بگیره تا اینی که مهندسی نمون مکانیک یا مهندسه الکترونیک و رشته های مختلف اول در رشته مهندسی لیسانس بگیره بعدا برای فوق لیسانسش وارد رشته های مختلف بشه. و به دللایل مختلف راژیم این صحبت خواهیم کرد. و بازم هم گشتد که سازمان ها کشور های پیشرفته اهدافی برای آینده خود دارند و برای رسیدن به اون پیشبینی های میکنند مثلا آمریکایی ها یک مسئلی دارن که میگه اگر ندانید که به کجا می روید چگونه بهترین راه رسیدن آن رو میتوانید پیدا کنید یعنی بهتر اینه که آدم یه هدفی داشته باشه و بعدن به راه برای رسیدن به اون هدف برنامه ریزی بکنه خب چالش هایی که مربوط به اثر تکنولوژی در جامعه است یه لیستشو خدمتون میگم و بعدا بیشتر راجبش توضیح خواهم داد اول از همه ساختن زیربنا برای شهرها می باشه. زمانی اگه خاطرتون باشه اگه شایدم مثلا عمرتون انقدر نباشه که بدونین من خودم یادم میاد که مثلا پدر مادرم به شهر تهران صحبت میکردن که یک زمانی آبنبار وجود داشت بعد از اون یواش واش شهرها شروع کردن لولکشی آب و لولکشی تازگی ها من میدونم در تهران حالا چند سال پیش بودش سه چهار سال پیش راید شروع کردن لولکشی فازلاب به جای فقط شاه ها داشتن و حالا که اینا رو ما میبینیم در شهرهای آمریکا اگه نگاه بکنین معمولا این زیر ها رو اول میسازن اول لوله کشی ها رو میسازن فازلاب رو میسازن راه برخ و گازکشی و اینا رو ایجاد میکنن بعدن شهر رو میسازن حالا در آینده چی میشه؟ فرزن کابلای مال تلفن، دیگه به نظر من احتیاج نخواهد بود با وجود این ستلایت هایی که وجود دارن با وجود این موبایل که وجود دارن کسی که توی یک دهی هست دیگه مجبور نیست که باعثه تا اینی که کابل تلفن براش بیاد یا حتی کابل برق براش بیاد تا رجب این صحبت میکنیم و یا شاید در قدیم از قنات و چاه‌های آب استفاده می‌کردند شاید در آینده جوری بشه که ما مجبور بشیم که خودمون یک دستگاهی رو درست کنیم که تولید آب بشه همون جوری که در سفینه های فضایی وجود داره در سفینه های فضایی که اونقدر آب به خودشون که نمیبرن که همونجا فکر کردن که چیکار کار کنند که هر چی که اطراف هست که با میشه ازش آب استفاده کرد تغییرش داد به آب و این رو تغییر میدن به آب که آب به آشامیندنی باشه و این،, این سیکل همین جوری ادامه خواهد داشت و بتونن ازش استفاده بکنند حالا آینده شهرهای دنیا چجور خواهد شد باید از الان برنامه ریزی کرد براش اگه اجازه بدین بریم به آگهی اول و بعدم یعنی خدمتون تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است یک تخصص یک نام دکتر کامران یدیدی مطارب عاشق نخطه شده experience honesty perseverance aggressiveness with 98% success rate in over 10000 personal injury cases we are trial lawyers that's what we do the law offices of cameron yddi دفوتر روغی دکتور کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمنوکس، گلندل، وودلان هیلز و اروائن 818 999 99 99 و یا 818 همشنو تصادف دات Javanon International Weekly Magazine Where the world comes together in every page Anhaïe k'e ba Javanon qararadat Tudan ni binden, tabligat khudra Be ture raigan, dar web, beraï Javanon Diroz, Amrooz, و Farada 1800 Javanon Javanon ra berroi internet hem Bebineid. Javanon Magazine Celebrating more than 28 years of Excellence and Integrity. Javanon.com ایلسجلس ای مرز های دانش برنامه از همجمن استادان و پژشگرام ایرانی. گانزی کام را نبدینی هستم این هفته مهمان دیگری نداریم غیر از خودم که راجب چالش هایی که مهندسان برای سال 2020 در حدود مثلا 15 سالبی سال آینده خواهند داشت صحبت میکنم و این چالش ها همونجوری که خدمتتون عرض کردم از کنفرانس و سمیناری بودش که یعنی درست شده که توسط نشنال اکدیمی آف انجینیرز برای کسانی که اطراف دنیا هستن ازشون هایش کردن که بیان و راجب این صحبت بکنن که آینده رو بهتر بتونن برنامه ریزی کنن از این چالش ها یکیش گفتم ساختن زیربنا برای شهرها بود و چگونگی آن دومیش ساخت زیربنا برای مرابطه و اطلاع ادرسانی فرزن چگونه بشه هر کسی در هر نقطه دنیا با هر کسی در هر نقطه دنیا دیگه راحت بتونه تماس بگیره من این مدت که مثلا بیرون از امریکا بودم راحت میتونستم با هر کسی با تکس تماس بگیرم حالا حساب بکنین به زودی هر کسی را به همون راحتی میتونه با من از وایبر استفاده کردم درست نشد اما از تایم استفاده کردم بسیار عالی تونستم تماس بگیرم حالا چجوری این رادارا رو را درست بکنن این ستلات ها را درست کنن که راحت هر کسی با هر کسی دیگه بتونه تماس بگیریم اینم یکی از شالش های دیگه آینده است یک چالش دیگه‌ای که وجود داره ایجاد تکنولوژی جدید برای افراد مسن می باشه. حالا با افراد مسن حالا کیا هستن؟ البته مثلا شما اگه فکرشو بکنین در حدود صد و خورده سال پیش در آمریکا من میدونم که حد متوسط سن در موقع مرگ در حدود 47 سال بود. حالا حسابش بکنیم ما روی 80 سال داریم صحبت می‌کنی. پس افرادی هستن که مثلا یه زمانی که ما می‌گفتیم حسین 40 خورده ای ساله بودن حالا 80 خورده ای ساله حسین هست. این افراد حسین هنوز باید با بتونن با سیستمایی که وجود داره بتونن کاملا کار کنند البته یک مشکلاتی خواهند داشت افراد مسن که ما باید اون رو در نظر بگیریم همون جور که ADA Americans with Disabilities Act وجود داره که از طرف دولت به تمام مهندسین دستور دادن که شما باید برای کسانی که بالای یک سنی هستند و یا از لحاظ فیزیکی اشکالاتی دارن بتونین چیزها رو طرح بکنین که همه بتونن استفاده کنن به طور مثال مثلا یه چیز ساده دستگیره دری دستگیره دری که اکثرا توی خونه های مختلف وجود داشت از اینای بود که گرد شما میگیرین و میچرخونین و در رو باز میکنین میبندین یه چیزی بسیار سخت برای کسی که روماتیسم داره کسی که آرترز داره و یا کسی که مثلا یک مادری که دو تا بچه بغلشه و میخواد از این در بره بیرون حالا حسابش بکنین تو اون رو تا آتیش گرفته یا زلزله اومده باید به دو بیرون یه همچین در بسیار سخت باز میشه و یا اگر مثلا خیست باشه اصلا باز نمیشه حالا حسابش بکنین مثلا فرزن میگم توی اتالت دستتون رو شستین و خیص بخواین اون در بازاس بکنین بسیار سخت ببرین که باید فشار زیادی بدین مخصوص اینه که گرده بتونین گردونینش بازم به خاطر کارهایی که مهندسین کردن دستور اومده که اصلا تمام ساختمان های دولتی البته ساختمان های خصوصی هر که میتونه تصمیم خودش رو بگیرید ساختمان های دولتی همه باید از اینایی که مثل دستگیره هست که شما باید تو دست بگیرین و فشار بدین لیور به قول این آمریکایی یا گفتن از اونو باید باشه یعنی الان شما هر ساختمان دولتی که برین یه همچی چیزی رو میبینین و یا هر ساختمان دولتی که برین یا ساختمان های عمومی که برین حتما یه رمپی دارن یک شیبی هست که برای کسانی که روی مثل گو هستن بهتون وارد اون ساختمان بشن و از هر طبقه برن طبقه دیگه اینا الان وجود داره حالا برای آینده ما چی کار بکنیم که اکثر کسانه که موسین هستن بتونن دسترسی به تمام سیستم ها و تمام کالاهایی که مورد مصرف هست داشته باشن و چه تکنولوژی استفاده کرد که از لحاظ پزشکی و درمانی بتونن اونا استفاده کنند چالش دیگه ای که وجود داره مهندسی محیط زیسته ما باید محیطی رو ایجاد کنیم که به آزار و به آزار به کسی نده و بشر و محیطش بتونن بدون این که مریض باشن با هم دیگه زندگی کنن در یک جا زندگی کنند محیط های مریض شما زیاد میبینید حتی مثلا ساختمان هایی هستن که باید مشروع میگیم سک بیلدنگ یعنی ساختمان مریض ساختمانی که توش اینقدر گاس های مختلف وجود داره همین مثلا موکتی که شما استفاده میکنین بالاخره یک جنس پلاستیکیه که اکثران یک بوی ازش هست که این این فیوم این گازی که ازش بانن میشه خب یه چیزه طبیعی نیست یا اینی که من از این, زی... از این مثال زیاد استفاده میکنم وارد ماشین که میشین ماشین نو بوی ماشین نو بوی مخصوصیه اما خب اون بوی ماشین نو در اصل یک گازیه که سمیه البته مثلا مدت زیادی باید این استشمان بکنید که انقدر سمی باشه همیشه بهتری که مثلا وارد ماشین میشین در یه مدتی باز نگه که این بوهایی که اون تو هست بره تا اینی که یواش یواش اینا از بین بره اما حالا محیط زیست رو حساب بکنین شهری مثل فرزند میگم شهر تهران که آلوده هست به هر حال بعضی جا ها مثلا این همه آدمایی که توش هستن سراتان های مختلف میگیرن مریض هستن چگونه این محیط رو سالم نگردارین و سالم بکنیم. این یک کاریه که کار مهندسیه از هر لحاظی حساب بکنین همون جور که توی اتاق شما نشستین میخواین اتاقتون اتاق سالمی باشه، هواش راحت باشه، شهر هم همینجوری در نظر بگیرین، ساختمان هم همینجوری در نظر بگیرین، مهندسان باید کاری بکنن که این شهر و این ساختمان جوری طرح بشه که سالم برای زیست باشه. چالش دیگه‌ای که وجود داره، مدیریت مهندسی مسائل پیچیده است. مدیریت مهندسی مسائل پیچیده یه مثالی براتون بزنم که اینو بهتر بتونین درک بکنین چند سال پیش در لاس انجلسی قسمتی که من خودم زندگی میکردم یک سری مگسی دیدن که این مگس های ماله میوه بودن و میخواستن اینا رو از بین ببرن واسه همین با هواپیما اومدن اینا رو سنپاشی کردن که از بین برن موقعی که این،, این مگس ها رو سنپاشی کردن اونا از بین رفتن و با اونها یه سری زنبور هم از بین رفتن این زنبورها زنبور عسل زنبور البته نه این زنبور زنبورها زنبورایی بودن که قذاشون یه سری حشرات دیگه ای بود بعد از اینکه اون زنبور عسل از بین رفتن زنبورها از بین رفتن اون حشرات چروک کردن زاده ولاد بیشتری کردن سال بعد اشکال این بودش که ما چگونه اون حشرات رو بتونیم کنترل بکنیم یعنی برنامهی که اون موقع ریخته بودن تصمیمی که اون موقع ریخته بودن تصمیمی که گرفته بودن تصمیمی نبود که از لحاظ سیستمی درست باشه مدیریت مهندسی مسائل پیچیده یه چیزیه که هر سیستم انجینیری روش میتونه کار بکنه و مثلا در این همین امسال من اینجا دو نفر رو با اشون کردم که مهندسین سیستم بودن که یکیشون راجب استفاده از مهندسی سیستم در استفاده برق صحبت کرد با شما خانم دکتر میرزایی بودند و کسی ای که صحبت کرد خانم دکتر فلافینی بودن که راجب چگونگی اوبیسیتی و چاقی و کم کردن چاقی صحبت کردن از لحاظ مهندسی باید خلاصه یعنی برنامه هست که مسائل پیچیده رو میشه باش حل کرد و نه اینی که یه تصمیم میگرف که برای یک زمانی درسته و برای دو دقیقه بعدش درست نیست چالش دیگه که وجود داره گلوبالیزیشن هست یعنی که چگونه مشتری کاله ها و اجناسی رو ما در نظر بگیریم که جهانیه. جهانی شدن این سیستم هام در نظر گرفته شده باشه مثلا یک هواپیما رو شما در نظر بگیرید در این هواپیما شاید خیال بکنید که این هواپیما رو در یه منطقه در یه جا می سازن در صورتی که این هواپیما در یک کشور تر شده یک کشور دیگه کشور دیگه بالشو می سازه یه کشور دیگه مطورشو می سازه در یک کشور دیگه اینا رو رو همدیگه با همدیگه میچسبونن یک کشور دیگه سی ماه شو درست میکنه و همینجور که اگر در نظر بگیرین شاید یه مرتبه یه هواپی در سی کشور مختلف داره درست میشه حالا چگونه اینا بط... باید بتونن با همدیگه صحبت بکنن؟ چگونه این موقع تر ترکردن این هواپیما بتونن با هم دیگه تصمیماتی بگیرن این یه چیز کوچیکی نیست و چگونه میتونیم میتونیم ما تمام این آدما رو در یک شبه بزوریم بدون که در یک جا باشند چند شب پیش بودش توی یکی از برنامه‌های تلویزیونی یک مجری برنامه خودش خودشو وورد در دو قسمت مختلف نشون داد هم در یه شهر بود هم در یه شهر دیگه و این یه چیز خیلی نرمالی خواهد شد همینجور که الان ما توسط تلویزیون میتونیم هم دیگر ببینیم توسط موبایل میتونیم هم دیگر ببینیم اصلا ممکنه حضور داشته باشیم بدونی که جسممون یه جای دیگه باشه اما حضور داشته باشیم در یک اتاق دیگه در یک شهر دیگه و همم اطراف هم اطرافمون رو بتونیم همون جوری که الان میبییم ببینیم, ببینیم. چیزی دیگری که وجود داره اینه که اکثر آدمایی که یعنی مشتری های دنیا دنبال کالا های نوتر بهتر و در خور شخص خودشون می باشه بهتر یعنی چ یه بهتر یعنی چیزی که برای من درست شده باشه درست همونی باشه که من میخواه ام چیکار ما بکنیم که بتونیم همچین عملی رو انجام بدیم فرزن الان کارهایی که شده اینه که اسکنر میشه استفاده کرد ا اسکنریی که الان وجود داره نه این که فقط مثلا ها رو اسکن بکنین با شما بذارین توی کامپیوترتون بلکه شما میتونین که فرزن جدا اسکنر وایسین این اسکنر قشنگ اندازه شما رو در میاره مثل یک خیاطی که پرو میکنه این اندازه ها رو میتونه بده به،, به ماشین و ماشین برای شما یه دونه شلوار یا کدش شلوار یا دامن درست کنه اگه اجزه بدین دنبالش رو بعد از آگهی میپرسید هر چهی طولانیتر روی پاام وای مین درد و سنگینی و برام پام بیشتر میشه به خاطر رگاه وارییس پامپ دیگه خجالت می کشم دا بپوشم سوزش و خواب رفتگی پاهاام خوابشب و ازم گرفته دکتر سام ابراهیمی داروی دو برد تخصصی در جرایی های قلب و عروغ از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده می کند کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزر یک بار مصرف بوده و برخم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 Get social with 670 AM KIRN. Like us on Facebook. Go to facebook.com forward slash Radio Iran. Follow us on Twitter. Our Twitter address is at KIRN670AM. Watch us on YouTube. Go to youtube.com forward slash user forward slash KIRN Radio. Get social with 670 AM KIRN. K I R N As Universal City California. Injà K I R N 670 AM, Simi Valley, Los Angeles. Mars hoye danish tajushgaran idani. دوستان عزیز به برنامه مرسای دانش گوش میدونین کامران آبدینی هستم راجب چالش هایی که آینده مهندسین رو به خود جذب میکنن رو راجبش صحبت میکنم چند تا از این چالش ها رو گفتم که توسط نشنال اکدمی آف انژینیرز سازمان ملی مهندسین آمریکا، ایجاد شده درست شده که یعنی سوال می ازش که چگونه خودمون رو برای اونها حاضر بکنیم به عنوان مهندس یکی دیگه مسائل حاد سیاسی اطراف جهانی که باید در نظر بگیریم هر مهندسی باید اینا رو در نظر بگیره مثلا فرضاً چگونه سوخت برسونیم به کشورهای مختلف موقعی که در یه مرحله ای یک محله در جنگ هست بالاخره از لحاظ مهندسی باید این کار کرد چیگونه یک هر, هر انصری رو از یک گوشه به یک گوشه دیگه برسونی چیزی دیگه که داره اتفاق میفته تو دنیا گوناگونی های مختلف افراد هست در محیط کار زمانی بود که اتفاقا من با کسانم در اینجا صحبت میکردیم اگر بریم مثلا در دو نسل پیش تمام کسانی که با همدیگه در اون خانواده آشنا بودن با همدیگه ازدواج میکردن همه تو یه شهر بودن همه فاممیلات تقریباً با همدیگه ازدواج میکردن. یواش یواش موقعی که همین جوری تاریخ میگذره به خاطر تکنولوژی بیشتر میتونستن به شهرهای مختلف برن و با رفتن به شهرهای مختلف آدمهای مختلف رو باشه آشنا شدن و الان به جایی رسیده که ما در آمریکا عادت داریم که کاملا با افراد مختلفی که از کشورهای مختلف میان کار بکنیم یک زمانی مثلا میگفتن مهندسی کار یک زن نیست این در آینده بیشتر و بیشتر خواهد شد چرا که نه؟ چرا مهندسی کار زن نباشه؟ راجب صحبت خواهیم کرد چالش دیگری وجود که وجود داره جهانی شدن سنایه و مهندسیه که کمی راجب صحبت کردم از واضح اینه که یک هواپیما در جاهای مختلف تر میشه و در کشورهای مختلف درست میشه دیگر تغییر محیط کار از شرکت های بزرگ به شرکت های متوسط و کچکتر کوچک، توسط کارافرین هست یعنی الان یک سیستمی باید درست کرد که یک کارافرینی یکی که ایده جالب جدیدی داره بتونه با چند نفر این ایده رو بیاره سنعتیش بکنه و به دست مردم رو مختلف بذاره به جای اینکه وارد یک سیستم بزرگی بشیم یک شرکت بزرگی بشیم این شرکت بزرگ اشکالش اینه که تا این سیستم رو بیاره به دست ما برسونه ممکنه سالها طول بکشه اب اقتصاد هم یک چیزیه که باید بیشتر مهندسین راجبش فکر بکنن مخصوصا این که اطلاعاتی که اقتصاد و اصلا مارکت و بازار دنیا به یک مهندس میده استفاده بیشتر از تکنولوژی در محیط تدریس و مهندسی این هم یک چالش دیگریه حسابشو بکنین ما من خودم موقعی که دانش, دانش آموز دبستان بودم ما ماشین حساب نداشتیم موقعی که به دانشگاه میرفتیم در مدتی که تو دانشگاه بودیم از ماشین حساب استفاده نمیکردیم از اسلاید رول استفاده میکردیم ماشین حساب و بعدن موقعی که اومد اولین ماشین حسابی که معمولی تقریبا بودش و ما تونستیم بخریم در حدود 300 دلار بود البته 300 دلار اون موقع یه چیزی در حدود مثلا شاید 3000 دلار الان باشه سخت بود که دادم یک ماشین حساب بخره حالا جوری شده که همه دارن از اینترنت استفاده میکنن از آیکلاود استفاده میکنن تمام چیزهایی که دارن فایلهایی که دارن همه میتونه بره روی جایی که در یعنی فیزیکی نمیتونی شما لمسش کنینم و یه جایی یک انباری نشسته و خوشبختانه و یا متاسفانه به جای رسیدیم این خیلی برای من جالب بود موقعی که خودم اینو دیدم یک اپی وجود داره و اپلیکیشنی وجود داره برای این تلفونای موبایل که شما البته به بچه ها هنوز نگین به دانشجویان و دانش آموزاتون نگین هنوز <تصفح> اما وجود داره سیستمی که شما یک معادله جب رو میتونین عکسش رو بگیرید همون ثانیه جوابش رو به شما میده یعنی دیگه اینی که بشینین من این رو چجوری حل بکنم و از این عرف دیگه وجود نداره همچی چیزی رو ما اگه داشتیم 100 درصد موقعی که تحتیلی عید بود میذاشتیم مشقمون همون ثانیه آخره قبل از سیزده به در انجام بدیم برای اینکه تمام این معادلات رو میتونستیم با گرفتن یک عکس حل بکنیم یه همچین چیزهایی حالا حسابش بکنیم الان وجود داره در آینده چه خواهد بود راجب محیط زیست صحبت کردیم اینه که گفتم ای چالش هایی بود که وجود داره حالا چرا راجب محیط زیست انقدر مخصوصا مهندسین باید صحبت کنن خب اثر ترح خودشونو هر کسی بعد در محیط و انرژی که از اون استفاده میشه ببینه مسائل محیط زیست و پزشکی رو با اش آشنا باید باشه که اثری که این مثلا طرح میذاره اگر من فرزن موبایل رو من ترح میکنم یا یک ماشین رو ترح میکنم چه اثری روی محیط زیست میذاره نه اینی که چون تونستم طرح کنم بین این ازش استفاده کنی توانایی حل مسائل در حد نانو یعنی بسیار بسیار کوچک حسابش بکنین ماشین های بسیار کچکی الان درست الان میتونیم درست کنیم توسط نانو منفکشرینگ که فرزن یک بافت سلول رو براتون درست کنه همون جور که یه ماشین سوزن نخ میتونه مثلا یه پارچه به بافه یک ماشین بسیار کچکی میتونه یه بافت سلول درست بکنه. الان وجود داره حالا حسابش بکنین در آینده بسیار راحت میشه این کار رو انجام داد ازدیاد جمعیت رو ما در نظر بگیریم چون که هرچی تعداد افراد میره بالاتر خب بلاخته یه اثری در محیط میذاره پس ما باید چیزهایی که ترمی کنیم خب باید به اون محیط هم بخوره چیز دیگه ای که راجب محیط باید در نظر بگیریم اینه که فرزن توی آمریکا سه چهارم امریکایی در محلی زندگی میکنن که هواش آلود است. اینو امریکن لانگ اسوسییشن به ما میگه. در کالیفرنیا مردم در آینده تا سال دوزار به چهل درصد برق بیشتر، چهل درصد بنزین بیشتر و 20 درصد گاز بیشتر احتیاج خواهند داشت. پس اگر ما همین سیستم که الان داریم استفاده میکنیم و در آینده استفاده کنیم همچین اتفاق خواهد افتاد. موقعی که 40% بنزین بیشتر استفاده میکنیم پس باید اثرش رو روی محیط زیستم ببینیم. 50% جنگل های دنیا الان از بین رفته و تا سال 2020 دو سوم ومه جنگل های دنیا از بین رفته. پس ما اگر بیشتر و بیشتر کالاهایی رو کنیم که دنیا رو آلوده میکنه صد درصد اثر بسیار بدی روی زندگی همه خواهد گذاشت 48 کشور دنیا یا 2.8 میلیارد نفر یعنی در حدود دو سوم جمعیت دنیا مسائل کمبود آب آشامیدنی خواهند داشت اگر همینجوری که الان هست ما پیش بریم 16 درصد جمعیت دنیا که در کشورهای سروتمند زندگی میکنند در, در الان دارن 80 درصد منابع طبیعی رو استفاده میکنند یعنی کسانی که در آمریکا فرزند دارن زندگی میکنند دارن حق کسانی که در کشورهای دیگه هستن و زیادی استفاده میکنه تا سال 2020 جمعیت دنیا تقریبا به 8 میلیارد نفر میرسه که منابع طبیعی رو استفاده کنن و یا سوء استفاده کنن خب پس ما باید آماده اون روز باشیم خصوصیت یک مهندس موفق پس در سال 2020 چه خواهد بود همون جور که این ایه به ما میگه این شخص باید در تجزیه و تحلیل ماهر باشه. رجبی میخوام یه ذره صحبت بکنم که چه فرقی داره با کسانی که الان وجود دارن مثل یک مهندس. ما الان در دانشگاه ها از لحاظ تدریس اکثر دانشگاه هایی که من میبینم در ایران در امریکا اکثراً اون دانشگاهی که قبلا ایجاد شده بود دیگه نیست یعنی ما الان شدیم یک مؤسسهی که کارآموزی آموزی میکنه یعنی من که دارم درس میدم میخوام یک مهندس سنایه بیاد بیرون و شروع به... کار بکنه به عنوان یک مهندس سنایه و یا کسی که پزشکی داره درس میده داره یک پزشک رو به اشعاد میده که چی کار بکنه تجزی و تحلیل پس چی شد؟ عرض میکنم. دانشگاه هایی که اصلا اول ایجاد شده بودن بریم سنن هزاران سال پیش اصلا شروع شده بودن برای اینکه مردم کسانی که فکر میکنن بهتر بتونن فکر کنن یعنی میامدن اونجا با هم تجزی و تحلیل میکردن راجبه چیزی صحبت میکردن اینجوری نبود که بشین توی کلاس ببین من چجوری مسئله رو حل میکنم تو هم یاد بگیر مسئله رو هموجوری حل کن و برو بیرون این برای انجام بده. یعنی ما کسی رو باید ایجاد بکنیم که از روز اول که وارد دانشگاه بشه بتونه بشینه فکر بکنه جواب ما رو بده حتی جوابی که ما دوست نداریم بشنویم این شخص مهندس در راهنده باید توانایی خلاقیت و هوش عملی در اون باشه پس ربات ما یک آدم مصنوعی ما نمیخوایم درست کنیم کسی باید باشه که بیاد و مسائلی رو بتونه تجزیه تحلیل بکنه با خلاقیت مختلفی که تره شما هیچ وقت خودمون نیده باشیم یعنی باید بتونیم با یک آدمی مسابقه بکنیم در کلاس که خلاقیت داری یک همچین انسانی باید در رابطه با آدم مختلف بسیار خوب باشه با آدم های مختلف منظورم اینه که با کشورهای مختلف با زن مرد من داشتم دانشوی حد الان آدم اصلا به فکرش نمیرسی که در قرن یکم توی آمریکا من شاگردی داشته باشم که جلوی من دستونه برگرده به یک خانم دکترخوومی بگی که تو چرا اینجا اومدی بعد تو خونه بشینی مثلا آشپزی کنی توی آمریکا یعنی شخص آمریکایی هم کاری رو میکنه اگه یوسف الدین ما این برنامه رو بعد از اوکی ها ای داشت میخوایم او مای گاد، چرا قیافت انقدر در به داغونه. من موتورسیکلت بودم بعد چوری تصادف کردم. و تصادف موتورسیکلم خیلی بدجوریه. وکیل قابل اعتماد سراغ داری که تجربهش در پرونده های تصادفات زیاد باشه؟ یک وکیل با تجربه و برا میشناسم که تخصصش فقط و فقط در تصادفات، دکتر کامران یدیدی. تا کنون هزاران پرونده صدمات بدنی داشته و شرکت های بیمه با نامش، تجربه قدرت کاریش بسیار آشنا هستند و برای موکلین خودش همیشه بالاترین قانونی رو دریافت کرده تلفونش رو داری وقت بگیرم لازم نیست با این حال و وضعیت پاشی بری اونجا یه نماینده از طرف دفترشون میاد و همه کاراتا انجام میده به همین راحتی تلفنشون هم خیلی ساده است و یاد ماندنی 818 999 99 818 999 99 99 یا ساده تر بگم 818 همش نو <تصوح> راست میگی 818 همش نو دکتر کامران یدیدی و با ویکتور ایروین ای می ده شنبه 6 دسامبر با محسن یگانه محسن یگانه سکوت قلب سموش گذشته که رفتیم دوم اون طرف محسن یگانه با جنجا این کنسرت سالو در نوکیت یه تو. تحییه بریت, با فروشگاه های منتخب ایرانی. تلفون اطلاعات 818-2222-9779. 818-222-9779 theater sponsored by law of <laughs> AM, Los Angeles <music> <music> <music> Mars hoye <-ha -yi> Danish barnami <lesbian> <music> az دوستان عزیز کامبران آبدینی هستم راجع به مهندسی مهندسی آینده دارم صحبت میکنم دوستانی روی خط هستند که ممکنه سعادی داشته باشند اگه اجازه بدین با اونا وارد بحث میشیم بفرمایید خواهش میکنم روی خطی بله با آن بله بله بفرمایی سلام عرض میکنم در مورد ترافیتم بحثی شد در این برنامه یا الان شما که میگین 40% sucht mir der baller hat manchmal da so traffic mschkelikleri 100% belli ne این مسائلی که راجبش صحبت شد همونجوری که گفتم راجب مثلا سوخت که داره میره بالا بعد چیکار بکنیم همچین این مسائلی بعد از اینی که راجبش پاس شد وارد یک دانشگاه میشه و بعدن یعنی این کاری که ما داریم الان انجام میدیم توی دانشگاه خودمون اینی که یه همچین مسئله ای وجود داره آقای مهندسه مثلا راه ساختمان، خانوم مهندس سنایه، خانوم مهندسه شیمی، هر کدوم از شما، شما بیاین بگین چه راه حلایی میتونین برای همچین چیزهایی پیشبینی بکنین و شروع بکنین روی اون کار کردن. یعنی موقعی که ما اشکال داریم با محیط زیست، پس آدمای مختلف، رشته های مختلف میتونن همون مسئله رو از روحای مختلف حل بکنن البته همون جور که اول برنامه هم بهش صحبت کردم به و من یعنی کاش که میتونی شد, می شد گفت که الان دیگه لیسانس را فقط میدهدیم به یک لیسانس مهندسی یعنی تمامی کسانی که دارن مهندسی میخونن یه چیزی بخونن برای اینکه همه در آینده دارن یه مسئله را حل میکنن همون مثلا فرزن مسئله محید زیست و اگر بتونن با هم همکاری بکنن چه بهتر اگر تعلیمات اولیتشون همه یکی باشه چه بهتر حالا جالبیش اینه که چون که شما این نختر رو گفتین من بیشتر راجع به این صحبت بکنم اگه اجازه بدین چگونه ما اینا رو درس بدیم و تعلیم بدیم که بتونن بیان و همچین مسائل رو با همدیگه بتونن حل کنند. همه کارهای مهندسی از آن کارهای تیمیه هیچ کسی تنهایی نمیتونه بشینه و یه کاری رو انجام بده اون موقعی که مردم درس می دادن می گفتن فقط باید این کار بکنی گذشت حتی همون جوری که متلعه هستین در دانشگاه های مهندسی دانشگاه های مهندسی معمولا یه سری علوم درس میدن و خب گفته شده که مهندسی چیه؟ مهندسی اپلیکیشن و کاریه که توسط علم انجام میشه، نه اینکه فقط پژوهش در علم. خب ما موقعی که علم رو در نظر بگیریم و بخوایم پیاده کنیم پس باید بتونیم که علوم مختلف و باهاش آشنا باشیم. STEM، STEM، science technology uh, و engineering and math این چهار تا چیزیه که uh, الان توجه بسیار زیادی داره میشه روش در درس دادن در مدارس مدارس ابتدایی و دبیرستان‌ها حتی کودکستان‌ها الان توجه بسیار زیادی میشه برای اینکه تقریبا میخوان که تا اونجایی که بتونن uh, تمامی دبیرستان ها و دبستان ها رو بیشتر یاد آور بشن که باید به ایریا ستم توجه کنند. پس اگر ما فکر این رو بکنیم که فقط یک مهندس باید علم و بدونه کافی نیست در دانشگاه های ایران اصولا جنرال ایژوکیشن درست داده نمیشه مثلا جغرافی، تاریخ و اینا رو زیاد درس نمیدن و بیشتر میان کرسای علوم و مهندسی رو درس میدن در صورتی که یک مهندس کامل همون جوری که صحبت کردیم باید راجبه تمام وقاایی که اطرافش میفته آشنا باشه یکی من خودم این سوالو داشتم که من اومده بودم آمریکا باید گص هوری برمیاشتم تاریخ برمیاشتم. میگفتم که ما اندوز کافی در ایران تاریخ خوندیم و تاریخ چندین هزار ساله و اینجا که اومدیم خب تاریخ برای ما خیلی سخت چون تا همش تاریخ آمریکا بود. و چرا باید من تاریخ رو بخونم؟ الان میدونم که شما بدون هیچگونه به انگلیسی historical دیتا بدون گونه اه اه های هیچ گونه داده هایی شما نمیتونین هیچ مسئله رو حل بکنین و خیلی از موقات باید خودتون برین اونا رو پیدا کنین پس گرفتن این اطلاعات ولاخره آدم باید به تاریخ گذره توجه بکنه چقدر شو؟ تصمیم میگیره هر دانشگاهی اما خب یه اندازش باید. الان جوری که داره در دانشگاه درس داده میشه بیشتر کرس های مثلا فرزن تاریخ دارن، کس جغرافی دارن کرس های مثل تعیمات دینی دارن حالا همه اینا دانشجو میگن من باید اون رو وردارم و میخوام زودتر اون ور دارمم تم بشه که برم کرس های اصلیم ووردار در صورت که در آینده اینجوری درس نخواهد داده شد در آینده اگر یک رشته ای باشه به اسم رشته مهندسی تمام اینا توی یک کرس درس خواهد شد مثلا یه خواهد بود رژو که الان ما وجود داره در دانشگاه ما رژو اخلاقیت در مهندسی یعنی ما داریم فلسفه می خونیم در است فلسفه یاد میدیم گیم به دانشوی مهندس خیلی مهمه برای اینکه بعد اخلاقیات و طرز برخوردش و تصمیم گیریش و بعد درست بر حسب اخلاقیات در نظر بگیریم خب زیاد من نمیخوام صحبت کنم برمیگردم به این موضوع اگه اجزه بدین دوست دیگری روی خط هستن بفرمایی خواهش میکنم سلام جماعه دکتر طوری که شما میفرمایید یک جنرال ایژیکشینی باید وجود داشته باشه و رشته های مهندسی هم پروفیشنال دیگری بشن مثل وکلا و کزشکان که دو دوره چهار ساله رو ببینن درست. یک مقدمه در حامی امور مهندسی و مسائل اقتصادی و مسائل محیط زیستی داشته باشن بعد تصمیم میگیرن که در چه رشته تخصصی میخوان ادامه بدن نمره شما 20 از 20 و 100 درصد بسیار درست منظور من همین بود من من دکتر من یه زمانی استاد دانشگاه اصفهان بودم ما 20 سال پیشتر این موضوع در دانشگاه اصفهان مطرح کردیم من آمریکا من الان تو آمریکا پرکتیس میکنم ولی به طور کلی شما کاملا صحیح میفرمایید این دانشجویی که امروز از دانشگاه میان بیرون به عنوان مهندس خیلیاتون یک گزارش خوب نمیتونن بنویسن. درست. بله. این خب خوب شما واقعا تو کردید که واقعا باید اینا یه جنرال ادویکیشن خیلی خوب داشته باشن. البته از مسائل اقتصادی هم مهم هست که واقعا دوره مهندسی را اگر بخوام مثل وکلاب پزشکان بفرستن 7 8 تا 10 سال و اینا بشه خب اونم یه مشکل اقتصادی خواهد داشت برکسی که دنبالش میخوان بدن. ولی شاید ما دانشگی بگیریم به مهندسی هم رو تربیت بکنیم که در سطح هم و وکلا و پیزشک هم و خوبه هاش بله بله و اصلا موضوع اینه که تصمیماتی که میگیرند به همون مهمی هست و تمام این جنرالوجی کهشنی که الان وجود داره توی خود کورس بعد در مهندسی بعد درس, درس داده بشه چرا برای اینی که اینا باید بهتر بفهمند نه اینکه مثلا من این کورس تاریخ رو برمی‌دارم که از شرش راحت شم بعدا برم ببرم های مهندسی رو بخونم دوستان دستا صحیح می‌فرمایید استیکس انجینیرینگ واقعاً مسئله خیلی مهمیه بخصوص در مسائل محیط زیستی که من باشم همه روز درگیر هست واقعا بله من خوشب داره میگم این کس توی انجینیرینگ و الان دانشگاه های مختلف حتی میگم دانشگاه های ما 100 درصد یعنی یه کرسسی که همه مهندسه باید بردارن و یه سینیور levelکننی باید ورداشته بشه حالا همین جوری به زودی خواهیم دید که یک پروشنال که میاد بیرون فوق لیسانس, ال... فوق لیسانس آینده همین لیسانس کنونی خواهد بود یعنی باید یک دست فوق لیسانس رو داشته باشه خیلی مچهکرم دوت گردیم خواهیش میکنم دوست عزیز بفرماین روی خط هستین بفرماین دوباره دو دو تکرار میشه توی رادیو وله وله هم تو رادیو و همینی که این برنامه روی خود سایت appc.org a P نقطه O R میشه و از میشه گفت فردا یا پس فردا شما میتونین اونجا تشبه ببرید و این برنامه و یا هر برنامه که ما قبلا داشتیم و دوباره گوش بکنیم متشکرم مرسی خواهش میکنم ما متاسفانه وقت دیگه این ندارم،, ندارم ولی گفتنی زیاده با اجازهتون مرخص میشیم و هفته خوبی رو برای تمام دوستان آرزو میکنم های دانش برنامه از انجمن استادان و, و پجوشگران ایدانی